سلام خدمت شما همراهان و شنوندگان محترم علی رزا پور هستم و قصد داریم با هم دیگه یه آشنایی داشته باشیم با قبیله گیکا با ما همراه باشیم قبیله گیکا یک مجموعه دوستانه هستش از یک افراد علاقامند و وضع آیتی که ما یه حدود یک سال شش ماه هستش که در کنار هم دیگه جمع شدیم و هر ماه یک ماه نامه رو منتشر میکنیم به نام قبیله گیکا که حاصل کار یک ماه ماه هستش ما کارهامون کاملا به صورت دافتالبانه هستش و سعی میکنیم که به صورت غیر انتفاعی باشیم و همینطور ما یک سایت داریم که فعلا در حالت بتا هستش ولی مقالات خودمون رو به صورت وب در اختیار دگان و شنوندگانمون که قرار هستش که بخش پادکست رو هم داشته باشیم میگذاریم یه گروه تلگرامی و کانال داریم که با نویسندگان خودمون در ارتباط باشیم، با خوانندگان خودمون هم در ارتباط باشیم و همینطور بتونیم مطالب خودمون رو با اونها به اشتراک بذاریم. هدف ما چی هستش؟ هدف ما این استش که ما بتونیم به صورت آزاد دانش رو در اختیار همه بذاریم. کسایی که بلد هستن بتونن دانش خودشون و افراد دیگه منتقل کنن و کسایی که دارن یاد میگیرن هم بتونن از این افراد یاد بگیرن. اسم قبیله رو برای این قضیه انتخاب کردیم اسم انتخابیمون برای قبیله این بودش که بیشتر ثابت کنیم که ما یک جمع دوستانه هستیم که خیلی به هم نزدیک هستیم و هیچ کسی نقش مدیر رو برای اون کیفا نمی و خیلی جمع دوستانه هستش سعی داریم بهترین کیفیت رو با بهترین بازدهی داشته باشیم. مدیریت قبیله گیک ها متمرکز نیستش و ما سعی میکنیم به همه نویسنده هامون چه اونهایی که تازه به جمع و اضافه شدن، چه اونهایی که از اول به همون بودن، چه افرادی که در قسمت مدیریت هستن، همه با هم دیگه یه رأی داشته باشن و بتونن نظر خودشونو با آزادی در قبیله بیان کنن و برای آینده اون تصمیم‌گیری کنن. ما سعی میکنیم افراد رو جذب کنیم به قبیله که اونها هم خود اطلاعات خودشون رو با ما در اشتراک بذارن تا ما بزرگتر بشیم. برای جذب شدن در قبیله شما باید به صورت آزمایشی در دو شماره ما مطلب خودتون رو ارائه کنید و ما خیلی خوشحال میشیم که با شما همکاری کنیم. حالا ما اینو مطرح کردیم چجوری میتونیم از قبیله حمایت کنیم ما داخل سایتمون که راه اندازی کردیم قرار هستش که یک بخش داشته باشیم برای حمایت از قبیله که شماره های قبلی منتشر شده قبیله رو بتونید ازش دریافت کنید و یا لوازم مثل ماک مثل خودکار مثل بچ و غیره که با لوگو قبیله هستند برای حمایت ما بخرید اینها رو و ما رو خوشحال کنید در هر صورت ما خوشحال میشیم که شما نظرت خودتون رو با ما به اشتراک بذارید اگر علاقه من تصدید با ما همکاری کنید اگر انتخادی دارید با ما به اشتراک بذارید با ما کارمون رو بهتر کنید با تشکر از زمانتون.